روزو الله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا و آله تاخرین خدمت عزیزان و دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز به خیر عرض می کنیم. ساعت و عباداتتون مقبول درگاه الهی و انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و از هر گونه گزند و بلایی هم به رحمت الهی دور باشید بحث ما در انشاهای طلبی بود و چهارمین انشاء طلبی که تمنی بود رو خوندیم و در واقع به شکل فرعی چون موضوعیتی هم پیدا میکرد ترجی رو هم که از انشاعات غیر طلبی بود اون رو هم با هم بحث تحقیق کردیم به طور کامل حالا آخرین مبحث که بحث انشاء طلبی رو تمام میکنه به حول قوه الهی شروع میکنیم و اون هم عبارت است از ندا ندا مستر باب نادا مناداتن و نداعن مستر دوم باب مفاعل است نادا یونادی مناداتن و نداعن مثل قاتل یقاتل و مقاتلتن و قتالن این از نظر لغوی نادارم که میدونید دیگه نادا یونادی نادی یعنی صدا کرد ندار این معنای لغویش ولی وقتی ما میگیم مثل تیتر اینجا اندار ان الفلام میگذاریم و اندار ان میگیم یعنی اون ندار اصطلاحی اونی که جزء انشاء مد مدد مذارموس ولی ما در لغت رو نمیدیم ندا در اصطلاح علم معانی که جزء انشاء طلبی است چیست خب ندا چیه ندا عبارت است از طلب المنادی بچا اینو درست میگید طلب المنادی منال منادا اغباله اغباله به حرف نائب مناب ادعو به حرف نائب مناب ادعو این الان تعریف ماست طلب المنادی منادی طلب کنه ندا کننده بخواهد من المنادا از کسی که داره نداش میکنه چی رو بخواد؟ یه کسی رو صدا میکنه از او چی بخواد؟ اقبالهو یعنی رو کردن او به خودش رو. اینکه که او برگرده بگه بله بفرمایید بله اقباله یعنی اقبال المنادا اقبال کردن و رو کردن منادا رو میخواد آیا هر کجا ندا کنندهی ندا ای رو اقبالش رو بخواد میشه ندا نه نه نه او ممکنه یه موقعی مثلا سوت بزنه صداش کنه جیغ بکشه صداش کنه اون بر دیگه این هم یه نو اما نه به حرف این، این به حرف متعلق به طلب. این. طلب کند منادی از منادا اقبالش رو، اما به کمک یک حرف. حرفی که نائب این منا با حرفی که به جای ادعو نشسته. دیدین تو نحوم گفتید دیگه، ها؟ میگن یای حرف ندا جای ادعو نشسته. منادای های مزاف مثلا منصوبه مثل یا صاحب الزمان زمان و این صاحب الزمان زمان منصوبه به عدعوی مقدره مفعولان بهه و این یا نیابت از او کرد یا وقتی میگید یا زیدو این زید مبنی بر زمه محلن منصوبه به عدعوی مقدر که این یا ازش نیابد کرد این جمله دیگه جمله نداست که جز انشاعات هم است بلا اگه یه حرف باشه و یه اسم از حرف و اسم که جمله و کلام تشکیل نمیشه بلکه این نیابت کرده از فعل و فاعل عدو و کلام تشکیل شده لذا این کلام انشائی نوش هم انشاع طلبی پس ندا یعنی طلب اقبال کند شخص منادی از منادا به حرفی که نیابت کرده از عدو و حالا اگر کسی یک کسی رو خطاب کرد ندا کرد اما طلب اقبال ازش نکرده بود اون داشت خودش صاف صاف بهش نگاه مثل که روبروش نشسته پسرش کاملا هم داره تو چشای بابا نگاه کنه این بهش میگه عزیز من ای عزیزم ای پسرم این حرفو نزن خب این ای عزیزم ای پسرم برای این نیست که او به این اقبال کنه خب اونم اقبال کرده داره نگاهش هم میکنه خب این دیگه میشه معنای مجازی میخونیم که چه معانی مجازی داره یا مثلا یه کسی با یه کسی داره دعوا میکنه بهش میگه کچن ای فلان خب این قصدش اینه که صدا کنه. طلب کنه درسته داره به شکل ندای میگه. قصد چیز دیگه است. پس قصد اگر این باشه که تو متوجه من شو، منو نگاه کن، به من رو بیار، اون موقع میشه منادا به واسطه منادی صدا شده برای اینکه توجه کنه اقبال کنه به منادی و ندا میشه ندای حقیقی پس تعریف ندا رو فهمیدیم حقیقی بودنشان فهمیدیم مجازی بودنشان که به واسطه قرائن فهمیده میشه درست شد خواهیم فهمید میخونیم دیگه الان مشخص بعد بحث بعدی اینه که ما گفتیم یک سری عدوات باید داشته باشید به حرف نائب مناب عدعو درست شد؟ به حرف نائب مناب تو بعضی از کتاب و بعضی از تحقیقات قدیم می به حرف نائب مناب ادعو و عطلبو برای خاطر اینکه نشون بدن یه خبری نیست که صدا می کنم. بلکه این شاییه شد دو تا فیلم می آوردن و عطلوب حالا این به حرف نائبن منابع ادعو این حرف هر حرفی نگاه و اسمی از نداست اینو رو میذاریم رو کنار ما با این کاری نداریم این جداست این بیرده پس ادوات و ندائه سب آن عدوات و ندائه هفت هست همزه هست مثل ازیدو یعنی ازید, ازید. و ای هستش ای زیدو و یا هستش یا زیدو و آه هستش آزیدو آی هستش آی زیدو آیا هستش آیا زیدو و هیا هستش هیا زیدو اینا حروف نداست قبط قطعا وقتی واضع واضع زبان عربی لغت عرب وضع میکرده این کلمات رو برای ندا حتما نظر داشته که هفتاد از کرده دیگه اینا همه در ندا کردن شریکند همه حرفی هستند که نیابت میکنند از ادعو و وسیله هستند که من منادی بتوانم منادا رو باهاش صدا کنم و طلب اقبالش کنم اما چرا هفته نگاه کنید حمزه و عی. این حمزه و عی مال ندای قریبه ندای قریب یعنی چی؟ یعنی ندای منادای غریب یعنی کسی نزدیک من نشسته بیگم ازید ازید از ای اینطور ایزید ای ای ای یعنی آهای زید این دو تا مال ندای قریب یا آ, آ, آ آی آیا حیا اینا مال ندای بعیده اینطوری باشه ساختارشون هم به گونه یه که برای ندای بعید به کار میره چون میشه طولش بدی مثلا میگه آزد آیا زید اینطور صدا کنی میشه مددش به دی صدا ده ساختاره باید. و حی شد که دعا. کمک میکنه که داره کمک میکنه که شما بتونید ندای بلند بکن. بعید رو باهاش صدا کنید خب پس بنابراین خوب بود دیگه یا قسطی بگرش میتونه بیاد بدون قدی کنه مثلا این شرطیه تو عدوات شرط خصوصیاتی داره خوام گفتیم خصوصیاتی داشت اما مثل حل برا تصدیق بود بقیه اسمها برا تصور بود برای. اینجا هم رئیسشون یاست یا یه حرف ندا لذا اگر یک جایی حرف ندا هست بشه منادا. مونده مثل یوسفا تو قرآن یوسفا اعرض عن هازا یوسف شطور دیدی ندیدی این قصه رو جایی نگیو اعرض عن هازا یعنی از این موضوع چش بپوش اینایی که دیدی رو جایی نگو این یوسفا هر کجایی که ما منادا داشته باشیم حرف نداش حذف شده باشه یا رو تقدیر میکره. رئیس دیگه. مثلا با لفظ الله فقط یا میاد هیچ حرف ندای دیگری نمیاد درست شد این خصوصیاتی داره حرف ندای یا پس معلوم میشه رئیس این عدوات ندا یا پس حمزه و عی برای ندای غریب و از یا آ آی ایا و هیا برای ندای قریب خب تا اینجارم که بلد بودیم چیز خواستی هم نداشت. نگاه کنید خود ایشون چی میگه میگه تو و ای لندائل غریب حمزه و ای برای ندای غریب. و گیروه ما لندائل غریب یعنی ندای منادل البعید برای ندای منادای بعید این نشون میده که واقعا اون وا اونجا زایده. اضافه آورده چون اصلا در وا ما بگید منادای بعید صدا نمی کنید مثلا یه کسی سرش درد میکنه میگه وا رعسا ای سرم ای سرم اون داره درد میناله این فعید نیست که اصلا ندانیست ندبست درست شد الهمزت و عیل ندائل غریب و غیرهما و مال به. این تا اینجا تا اینجا تا اینجای ای مطلب رو ما آموختیم یعنی چیز سختی هم نبود اما نگاه کنید در ندا ما دو مبحث مجازی داریم یعنی در ندا از دو جهت ممکنه مجاز واقع بشه یکی در اصل ندا کردن یکی در اصل ندا کردن یعنی وقتی یه کسی داره به یک کسی میگه ای پسرم ای عزیزم حرف منو گوش کن اصل ندا مجاز چون واقعا برای این نیست که او بهش نگاه کنه توجهش نیست بهش صدا کنه میفهم کنه با اونجایی که پسرش دوره میگه پسرم صداش میکنه اونم میگه بله بله اصل ندا مجاز واقع شده یعنی طلب اقبال توش نیست گاهی اوقات مجاز در عدواته مجاز در عدوات نداست یعنی چی؟ یعنی همزه که برای ندای قریبه آورده تو بعید به کار برده خواهد من نکته ای یا یا و عیا و هیا که مال ندای بعیده آورده در مورد غریب به کار برده طرف بقلشش هسته بگه هیا زید داد میکشته اینجا بگو عدوات ندا مجاز شده پس ما در باب ندا مجازیتمون و حقیقت تو دو مهور واقع میشه یکی در اصل خود ندا کردم که ممکنه حقیقت باشه واقعا صدا میکنه ممکنه مجاز باشه واقعا قصش طلب اقبال و نگاه کردن او نیست خالصش چیزی دیگه و ممکنم هست حقیقت و مجاز در عدوات ندا بابوش یعنی این طرف دور واقعاً با حیاس داشت کرده نزدیک با همزه صداش کرده اما گاهی اوقات ممکنه مجاز اینجا باشه یعنی منادا دوره با عدوات ندای قریب صدا کرد منادا نزدیک با عدوات ندای و صدا کرد. کرده مجاز دو محور واقع میشه این دو محور رو توی این پنجا و پنج و پنجا و شیش کرده پنجا و, پنجا و, پنجا و شیش پنجا و مبحث مجاز در اصل نداست پنجا و پنجش مجاز در عدوات نداست پس یاد گرفتیم پنجا و شیشش مجاز در اصل نداست که ممکن واقع بشه پنجا و پنجش مجاز در ادوات نداست که ممکن واقع بشه خوب. حالا از اون جایی که اصل ندا حقیقت و مجاز روش بحث بکنیم یعنی خود اصل ندا رو حقیقت و مجاز روش بحث بکنیم اولویت داره تا عدواتش پس بهتر بود که اول پنجه و شیش رو مینوشت دارد شد <تصفيق> که در واقع برمیگشت به پنجه و دو که تعریف ندا رو کرده بود و ندای حریف بعد پنجه و پنج رو مینوشت که برمیگشت به پنجه و که بحث عدوات ندار رو بیان کرده بود برمیگشت به پنجه و و پنجه و چهار که عدوات ندار رو ما خب جا به خب ما درستش رو بخونیم فقط اینجا باز یه اشتباهی صورت گرفته یعنی یه چیزی افتاده اونم اینه که توی پنجه می و میگه یخ رو ندار بلکه باید بگه قد یخ رو ندار قد اونجا لازمه چرا به دلیل اینکه گاه مجاز واقع میشه مجاز فرع بر حقیقته مثل اون بالا نگاه کنید تو پنجه و میگه قد یون از زلول و اونجا قد میگه اینجا هم باید قد رو بیان کنی یعنی گاه مجاز واقع میشود شود در اصل ندار قد یک خروج گاهی خارج میشه ان ندا، یعنی همین ندایی که ما تعریف حقیقیشو برای شما کردیم ان معناها الاصلی از معنای اصلی خودش که برای شما خوندیم خارج میشه خب اگه خارج بشه از معنای حقیقیش به چه معانی میره الان معان اخرى به معانی دیگری اون معانی دیگه الى معان اخرى مجازیت اون معانی دیگه هست. از کجا میگیم؟ چون میگه توستفاد و منال قرائن که اون معانی مجازی از قرائن فهمیده میشه. حالا قرائن ممکنه لفظی باشه ممکنه غیر لفظی باشه قرینه است خب چیزی که با قرینه فهمیده میشه مجازیست معانی دیگری که تو استفاده و قرارید مثل چی؟ مثل که از یعنی معنی کردن کنیم و تحصر اظهار حسرت کردن م? تحصر ولی اقراء تشویق کردن و معانی دیگری مثلا اظهار لطف کردن برای اینکه نصیحت رو قبول کنه ای میگه عزیزم ای پسرم اینها معانی مطاقیه مثل برای توهین کردن گوش میگه کچل آهای زشت داره توحیم میکنی، درست که از زجر و سر اینا توش طلب اقبال نیست بلکه بگو درازهای دیگری هست که ما اینها را از سیاق و از قرائن لفظیه و غیر لفظیه متوجه بشیم خب این مال اصل ندا که مجاز قد یخر النداء نداو معنا ها اصلی معان اعلام معانن اخرى مجازییت توفاد من القرائن یعنی همون مجازییته که از ذجره و ت و, و و و و. اما 5 میگه 5 و میگه که گاهی اوقات منادای بعید مجازن جایگاه منادای قریب رو پیدا میکنه یعنی دوره ما با حرف ندای قریب صداش میکنیم مجازی میشه دیگه چی مجازی میشه؟ اون حرف ندا حرف ندا وقتی منادا دوره باید حرف ندای بعید بیاریم ولی ما حرف ندای قریب آوردیم این به خاطر نکته ایه حالا نکاتشو میکرم درست شد؟ قدیان از زلال بعید و منزلتال قریبه فیانادا بلحمزته و عی پس مورد ندا واقع میشه با همزه و عی ای. این یک دلیلی داره کجا میشه که ما بعید رو نازل به منزله قریب حساب میکنیم و با حرف ندای قریب صداش میکنه آه. جایی که منادا خیلی پیش ما ارزش داره خیلی پیش ما حضور داره میخوایم بهش بگیم که تو کی از پیش ما رفته ای که من تمنا کنم تو را. که ندا کنم تو رو تو جلو چش منی تو تو دل منی تو تو ذهن منی من مثلا نمیتونم تو رو صدای بلند کنم یعنی تو دور از منی بلکه تو بغل من نشستی تو پیش منی لذا وقتی نامه داره مینویسه به فرزند خودش که اون سر مثلا دنیاست ر مینویسه اولدی این هایت عشق و محبت او رو نشون میده که یعنی تو ولد من چرا تو بغلم نشون نمیتونم باور کنم تو دور باشی من بگم یا ولدی ایا ولدی معشوقشه این تو سلام نگاه کنید میگه اشارتن الا قربهی من القال یعنی من قلب المنادیل اشاره میکنه با این به قرب منادا، به قلب منادی و حضورهی به ذهن یعنی به ذهنی و این تو تو ذهن من حاضر هستی و نزدیک و کنار قلب منی تو پیش منی من تو رو دور نمیبینم برای همین با حرف ندای قریب تو رو صدا یا حرف ندا میشه مجاز از اگر دور بود و با حرف ندای دریب صدا شد در از عبارت است از اینکه میخواهد به او بگوید من اصلا نمیتونم تصور کنم تو دوری تو تو ذهن منی تو جلوی چشم منی تو تو قلب منی و من تو رو کنار خودم میبینم و به خاطر همین تو رو با حرف ندای غریب صدا او یه بود اما نگاه کنید و قد یونزل و گاهی اوقات قد یونزل ال القریب و منزلتن به گاهی اوقات بغلش نشسته ها دعات میکشه سرش آی زید قریبه او رو نازل به منزله بعید حساب میکنه قد یونزل القریبو یعنی المناد القریبو منزلت البعید منزلت المنادل در جای پس ندا میشه به غیر اله همزد با یا ایا هیا آ آی صدا میکنه با عدوات ندای اینجا چه غرضی هست که بغل من نشسته داد سرش میزنم با ندای بعید. اینجا سه تا قرز هست یک اشارتاً الى اولو و مرتبتی میخواد اشاره کند با بلندی مرتبه منادا یعنی من کجا و درست تو بغل منی آه ولی نمیتونم مثل کسی که ندا. اصلا باور نمیتونم بکنم تو کجا و من کجا تو خیلی بلند مرتبه اولو و مرتبه تو جانشین علوه مکانیت شده بعد مکانیت شده مثل اینکه خلیفه کنارش نشسته ها یا بغلشه موقعی که ندار میکنه میگه آهای خلیفه ی مسلمی آهای امیر المؤمنی این آهایی یعنی داره تعظیم میکنه یعنی ما باورده میکنه با. نمیگه امیرال مومنی امیر اینجوری دیگه نمیگه که با همزه باشه یا ای باشه میگه ایا خلیفتل المسلمین دون تا و اینجور چیزا دیدید میگه آها پادشاه بلند مرتبه شما دستو بفرمایید پادشاه یه متریش بایسته میفهمه که میخواد بگه که من میخوام بگم تو کجا و من کجا مثلا اصلا نمیتونم تو خودم رو در حضور تا ببینم تو بلند مرتبه این و ما پایین دست تو بعد مرتبه داری این بعد مرتبت جایگاه بعد مکانی اینه مثل که شما خدا رو صدا می‌کنید؟ یا الله یا الله یا الله خدا نزدیک اقرب الیه من حبل الورید از رگ هم نزدیک اما چرا با یا صدا کردیم به خاطر بلندی مرتبه خدا عزمت تو یا الله دو او انحطاط منزلتی عکسش انحطاط منزلتی میخواد بگه تو مناده اینقدر پستی ما نمیتونیم باور بکنیم که تو کنال ما واسلی. لذا این انهتات منزلت تو نازل به منزله اینه که تو فاصله داری با ما عکس خبری دیدید مثلا بازی یا اون کسی که در جناق خلیفه است دزدی رو آوردن میگه آهای دزد نابکار میگه ا دزد این اینجوری نمیگه نمیگه اساره میگه ایام ایها سارق یا ایها سارق آهای دزد انعادات منزله اینم هم سومیش جایی که عدات ندا مجاز میشه و ما بعید رو برای قریب میاریم جایی که منادا قافله ذهنش برای کنید یه بغل بغل من نشسته مشغول موبایلشه سرش تو گوشیشه بگم از زید از زید یا نمیشتره زید برق از کلش میپنه این درسته پیش من جسمش هست اما روح و روانش پیش من نیست و من به این دلیل اونو با ندای بعید صدا صدایه دیروز با اوقات یکیسی حواستش بقل آدم نشسته تو گوشیشه یه های زید. خودش میفهمه که شما دارید بهش میدید که حواست پرده کجایی جوری که اگه آروم داد کنم نمیفهمی اینقدر قفلت داری و پراکندگی ذهن بعض موقع برای خاطرین که قدی نشون بگوید چه خبره چرای داد میزه بقلت نشستم یعنی بگو به, به اینطوری بگو چه داد میزه حالا ما اینو دیدیم لذا میگه او قفلتهی و شرود ذهنهی شرود یعنی پراکندگی دالش مال تو کتاب افتاد. ما شروع ذهن ببین. اینکه که نشون بدیم، شروع ذهنشونشون نشون بدیم می‌گفت. بحث نداره و کامپل گفتم. یعنی جوری که شما هیچ گول نقص و مطلبی توش نداره درس رو گفتیم. حالا دیگه مثال، مثالم که زیاد زدم خدا رو. شد؟ حالا مثال‌های متعددی دیگه بزنیم. یعنی چیز جدیدی ما توی این درس دیگه نداریم اون چه که قرار بود شما از این درس یاد بگیرید یاد گرفتید ندا رو تعریف کردیم که طلب المنادی من المنادا. اقباله اقبالهو به حرف نایب مناب ادعو عدوات ندا رو گفتیم هشتاست گفتیم نخیل هفت سوار رو گذاشتیم کنار هفته همزه و عی برا ندای غریب و یا و آ و آی و آیا و حیا برای ندای بید حالا اگر اینای ای که مال غریبه تو قریبم بکار به کار ببریم اونایی ای که مال بعیده تو بعیدم بکار به کار ببریم میشه حقیقت اگر یکی رو واقعا صدا کنیم که به طرف ما اقبال کنیم میشه حقیقت اما ممکنه که واقعا قصد ما از ندا اقبال او نباشه ممکنه این حرف ها رو هم جابجا لذا گفتش الهمزت و عیل ندای قریب و غیرهمال و نداد بعد اومد دوتا مجاز درست کرد 55 و 56 56 ش که قد یخرز گفتیم باید باشه برای جایی بود که ندا مجاز میشو که اصلا معنای حقیقی ندا مد نظر نیست طلب اقبالی توش نیست و ما اینا از قرائن میفهمیم خب مثل چه چیزایی مثل زجر و تحسر و اقراب و توهین و تحقیل و یا اظهار لطفو نه و گاهی اوقات هم خود عدوات ندا مجاز میشه مثل اینکه غریب نیست ولی ما غریب فرضش میکنیم لذا با همزه و عی صدا میکنیم این به خاطر اینکه که بگیم تو تو دل مایی تو ذهن مایی تو چشم مایی ما, ما, ما نمیتونیم اصلا تو رو دور ببینیم و با ندای باید صدا اما گاهی اوقات ما دور فرزش میکنیم و با یا و ایاب و هیاب و آب و آب و آی صداش میکنیم اینجا سه تا غرز بود یکی میخواییم بگیم تو خیلی بلند مرتبه ما سا تو باور کنیم که تو کنار ما باشی با ندای صدات کنی دو تو خیلی منحد و پست هستی ما تو نمیتونیم تصور کنیم در حضور ما باشی ای خائن ای خائن نابکار این هتوته منزلت یا نه اصلا درست کنار ماست بقل ما نشسته ولی انقدر ذهنش مشخوره. انقدر از ما قافله که اگر ما با ندای قریب صداش بکنیم نمی فهمید. نزا داد سرش بکشیم، با ندای بعید صداش کنیم تا حرف ما رو متوجه بشه. برای بار دوم هم تکرار کنید. حالا دیگه نگاه کنید چند تا مثال دیگه. یه امثله دارد و چند تا مثال و توضیحاتی که داخل متنه. نگاه کنید به مثال اول خوب نگاه کنید مثال اول رو ان ندا او الا امثلاتو شتاب اب الطيب الى الوالي وهو في لعتقال منین این مثال هایی که الان میخونیم این مثال ها براتون توضیح بدم این مثالها ها مال جاییه که عدات ندا مجاز شد. چند یک، دو، سه، چار. تو این قدیان از زلو که پنجه و پنج بود چند تا مجاز عدوات ندا گفت چار یکی یک جایی که بعید غریب حساب میکنیم یه غرست داشت. و یکی هم جایی که قریب بعید عید حساب میکنیم سه تا داشت، علوه و مرتبت انتهاتات منزلت و قفلت و شروع ذهنش چهار دو یک و دو و سه و چهار دو. این مال مجاز در عدبات نداه بعد توی متن بحث نگاه کنید پاراگراف آخر میگه وقد دخلوش و اینجا قدو نوشته این وقت تخرجه دولت شد مال جایی که ندا خودش میشه مجاز یعنی مال مثال پنجاه و شش حقیقتشون هم که مشخصه دیگه حقیقت که دیگه نیاز به مثال نداره که یه جایی مناداس دوره دور بایستاده حسن آقا ما صداش کنیم بیاد بیاد مثلا نهار بخوره یه وها حسن آقا بود و بود رو دست رو تک میری حقیقت صداش کردیم بناش می بیا بیا بخوریم هم حقیقی هم ادات دار هست حقیقت نیازه به مثال آنچنی نداره فراممان است مثال مثالست پس این چهارتا مال 5 پ قدر یا نزذله میگه کتب عبودتیب ایلن والی آقای عبودتیب نوشته به والی والی کسی بوده که عبودتیب رو در حبس قرار داده بوده به اون نوشته و هوفل اعتقال بوده. و حالان که عبودتیب در اعتقال او بوده در حبس او شد شخصی که او رو به حبس انداخته بوده کجا بوده؟ تو گاخش نشسته بود. متنبی کجا بوده؟ تو حبس بوده؟ از تو حبس برای او اینو نوشته. خ حالا اون شخص در مقابلش پیشش نه دوره؟ اگر بخواد صداش بکنه باید بگه ایا حیا خلیفته المسلمین اینطوری بگه ولی با همزه گفته چرا؟ مخواد دلشو به دست پیده بگه. بگه چی؟ تو پیش منی تو تو دل منی دوستت دارم مثلا نمیتونم تو رو جدا از خودم ببینم لذا با همزه صداش میگه اما لکرقی رق یعنی بندگی رقیق یعنی بند غلام اما مالک الرقی ای کسی که مالک وجود منی و من از مالک و ای کسی که شعنه هبا تو لجینه و ادخل عبید ای کسی که شعن و کار او بخشش های نقره لجین نقره کارش اینه که نقره ببخشه درهم و دینار ببخشه و عتق عبید و بنده آزاد کنه دستگیری کنه میگه آهای کسی که مالک بندگی منی و آهای کسی که کارش اینه عطاو و کرم میکنه و بنده آزاد. مم. یعنی من بنده تو هم ای ماله که من ای کسی که کارت قیبه کردن و بنده آزاد کردن و ادخال عدو پایین میگه الفزه. مشخص. و الهباد العتایو و الوجین الفزه و العدق ات تحریر آزاد کرد بعد میگه تو مثله دوم، دلیل نداره میگه آهای مالک من آهای کسی که کارش بخشش است و بند آزاد کردن دعاو تو کرد من تو رو صدا کردم دعاو تو کرد یعنی نادایی تو کرد اندن قطع رجاع رجاع یعنی رجایی. من تو رو صدا کردم موقعی که دیگه امیدم از همه جا قد این انقطاع رجایی ول موتا منی که حبل الورید و در وقتی که مرگ نسبت به من مثل رگ گردن شد یعنی من رو صدا کردم موقعی که کارت با استخونم رسیده بگه به هیچی امید ندارم و مرگ هم یعنی مرگ من و, یعنی و موتی منی و مرگ من نسبت به من فحبل ورید مثل رگ گردن شده یعنی اینقدر به من نستیک اسرائیل بالای سرم بایست درست شد فحبل ورید ارغون فلاناق رگیسترگردن یوز ربو مثلا فی شدت القرب مثل واقع میشه در شدت نزدیک تو قرآن هم هستیدی که میگه ما نزدیک به انسان هستیم اقرب و الیه و نحنو اقرب و الیه من منحبلل ورید ما از رگیگردنشم هم اون نزدیک داریم کوک خب. چرا حالا ایشون امالکه گفت برای که مخواد بگه تو, تو جلوی چش منی تو تو وجود منی تو تو حلو منی حالا چرا انقدر مخواسته بشه از حال لطف کنیم کاری بکنه که اون برگرد و نجاتش خود پایین نگاه کنید البحث ایسا عردنا اقبال عهد علینا اگر ما بخواهیم که کسی به ما رو کند دعوناهو به ذکر اسمی اونو صدا میکنیم به اینکه اسمشو صدا میکنیم یا علیو یا زیدو صدا میکنیم او صفت منصفاتی یا نه صفتی از صفاتشو صدا میکنیم درست شد میگیم یا ولدی ای فرزند من یا عالمو آهای عالم یا مؤمنو آهای مؤمن با صفتی از صفاتش داشت, داشت. بعد حرف اسمشو میاریم یا صفتی از صفاتش میاریم بعد حرف اونم بعد از یک حرفی که نائبن منابع عدو جانشین عدو شد این میشه ندای حقیقی درست و یوسن ماهازا به ندا و این نامیده میشه ندا منظورم ندای حقیقی چون واقعا ما اقبالشو خواستیم با حرفی که نائب عدعوست صداش کردیم حالا یا عصفشو گفتیم یا وصفشو گفتیم صداش کردیم و عدواتون ندائه یا تو و عی و یا و آ و, آ و آی و عیا و هیا اینا حروف نداست این حرفتو وله اصلوفی ندائه غریب اصل در ندائه غریب انیونادا بلحمزت او ای اینه که با همزه یا عیسه داره در ندای غیر وفه ندای البعید انیونادا به غیره ما و در ندای بعید ندا بشه با غیر این دوتا من بقیه یا از بقیه تا حرف دیگه استفاده بشه که برا مدده هست غیره جز این که ان نه هناکه اسبابن بلاغی ولی باید بدونیم در اینجا یه نکات بلاغی هست تدعو الى مخالفت حازل است که ما رو فرا میخونه بادار میکنه به این که با این اصل مخالفت کنیم یعنی غریب رو با ندای بعید صدا کنیم بعید رو با ندای قریب مخالفت حازل و سنش ره و لکه ها زهل اسبابه فیما و ما برات این اسباب رو در مثال هایی که میاد توضیح میدیم که من برای شما کامل توضیح داد تعمل حالا این مثال اول که مال آقای متنبی بود تعمل المثال الاوله نگاه کن به مثال اول. تجد المنادا فیه بعیدا میبینیم منادا بعیده تو کاخش نشسته منادی هم ته سیاهچال و حبس گست تجد المنادا فیه بعیدا ولیکن نعبد طیب ولی جناب آقای عبد متنبی ناداهو به زد. با همزه صداش کرده الموضوع عطل الغریب با همزهی که وضع شده برای منادای خیل خب چرا این کاری کرده؟ اگر نکته بلاغی نداشت تو چی که غلطه؟ بله نکته بلاغی داره فم از سبب بلاغی اون نکته بلاغی اینجا کجاست؟ میگه از سببو ان لعبت طیب ارادن یو بینم سبب اینه ان لعبت طیب ارادن یو بینم آقای عبود طیب اراده کرده که بیان کنه ان المنادا اینکه منادا یعنی شخص والی علر رغم من بادهی فی المکان با همه بعدی که در مکان داره با وجود بعدی که در مکان داره قریب من قلبی نزدیک که به قلبه مستحضرون فی ذهنهی حاضر شده در ذهن، لا با ان از فکر او اصلا بیرون نمیره لایقی با که ها حاضرون معهو فی مکان واحد انگار بغل ما نشسته در یک مکان واحد با او حاضر است و حاضهی لطیفتون بلاغیتون و این یک نکته است توصوق و استعمال لله همزته و عیفین دایل و توصوق و یعنی توجب این یه نفته بلاغیه که تجویز میکنه به کار بردن همزه و عیرو رو در ندای خوب یاد گرفت مثال دو و سه و چار عدوات مجاز شده منادا غریبه ولی ما بعید حسابش کردیم یک به خاطر و مرتبتش دو به خاطر انحطاط مرتبتش سه به خاطر شرود و قفلت ذهنیش ستا مثال نگاه کن دورو و قال ابو نواس آقای ابو نواس گفته قال ابو نواس یا ربه جزء زهدیات شعرهای زهدیات همونه میگه یا ربه یعنی یا ربی. یا یه حرف ندا که مضافنه لعی. اون منادا که اضافه شده بوده به یا. اون یا افتاده یعنی یا مضافنه. کسره برش دلالت. یا ربه یعنی یا ربی. حالا پروردگار او نزدیک هست به او یا دوره. که خدا از هر کسی به انسان نزدیک دارد که حفظ کردم و نحنو نقرب و... و الیه من حضرت. پس چرا با یاد صدا میکنه؟ به مخواد بگیم. من گنهکار کجا و تو خداوند کجا؟ مثلا باور نمی کنم تو در کنار من باشی. من لیاقت این رو ندارم. لذا عنوان میکنه؟ به؟ رب... این پروردگار من این از ومت و کسرتن کسرتن تمیزه اگر گناهان من عظیم باشه خیلی زیاد باشه از جهت کثرت بی گناه کردن ان از ومت و کسرتن فلقد علم تو یعنی مشکلی نداره چرا؟ فلقد علم تو به ان ازم زیرا من باور دارم علم و بابا به معنای تیقن است لقد علم تو یعنی لقد تیقق تو چون من یقین دارم به ان افکه اعظمو به اینکه اف تو و من زننو عظیمتر از دست گناهان. افوه تو منادا خداست نزدیک اوست، نزدیکتر از هر چیزی ولی با یا صدا کرده به خاطر اونو به مرتبش که من گناهکار نمیتونم تو خدای در کنار خودم فرض کنم تو کجا و من کجا آهای پروردگارعظیموش اگر گناهان من از جهت کسرت خیلی زیاد است فلغت مهم نیست این جزای شرط جای در واقع جزای شرط شد شده یعنی فلا به علیه شود. مشکلی ندارم چرا؟ فلقم چون قسم می کورم علم تو یقین کردم به انعفکه اعظمو نیزون دریای عفت تو از گناهان من بیشتره پس این مشکلی بر من یا رب این عظمت زنوبی کستتن فلقمت علم تو به انعفکه اعظم حالا متنو نگاه کنید اون سال الال امثلت سلاست باقیه. به تا مثال بعدی نگاه کنید دو سه چون فی کلن منها تجد المنادا فی کلن منها قریبا خواهی یافت که منادا در هر یک از این ستا نزدیکه منادا نزدیک. ولكن المتكلم استعمل فیها احرف ندائه الموضوعت للبعید فما سبب و حاصل خوب دقت کن اون زلل الامثلت سلاست به این مثال های بعدی خوب نگاه کن تجد خواهی یافت المنادا منادا رو فی کل منها قریب خواهی یافت که منادا در هر یک از ها نزدیکه ولکن المتکلمه ولی آقای متکلم استعمال فیها احروف ندار استعمال کرده در اینها حروف ندار رو الموضوعت صفت احروف حروف نداری که وضع شده برای و فما سبب هست علتش چیه مرمی کنم ان المنادا فی المثال الثانی جلیل الغدر سبب اینه که منادا در مثال دوم جلیل الغدره عظیم و شانه. جلیل و القدر خطیر و شانه. عظیم و شانه. خیلی بزرگه فکه اند بود درجتهی فلعظم پس گویا بعد منزلت او درجتهی فلعظم در عظمت بود عظمتی او بود شخصیتی او دور بودن شخصیتش نسبت به ما جانشین بود مسافتش تو کجا و ما کجا فکرن بود درجتهی فیل ازمه بودان فیل مسافت و لذالک و به خاطر همین اختار المتکلم یعنی ابو نواس فی ندائهی الحرف الموضوع الندائه غریب اومده اختیار کرده حرفی رو که برای ندای فریب وضع شده ولی زالکه اختال المتکلم فی ندائی الحرف الموضوع لندائر بعید برای همین اختیار کرده متکلم در ندائی خودش حرفی رو که وضع شده برای ندائه بعید یار انتخاب کرده برای چی؟ برای منادایی که غریب حرف ندائی غریب نیمورده که حقیقت باشه بعید آورده چرا؟ لیوشیر اله هاز شعنه عرفیه. تا اشاره کنه به این احسمت بلندی که منادا داره. خبیده توضیح دادیم چندین بار هم خب. منادا غریبه حرف ندای بعید به کار رفته برای چی؟ برای خاطر این که بگه تو بلند مرتبه عظیم و شنی ما نمیتونیم باور کنیم که تو در کنار ما باشی تو کجا و ما کجا بعده مرتبتی و بعد شخصیتی او جانشین بعد مکایی شد سه و قانن فرزدقو حالا آقای فرزدق میگه یفتخ رو به آبایی افتخار میکنه به پدران خودش و یحجو جریرا و مورد حجم قرار میده جریر ابن خطفا رو که رقیبش شهست سال این دو نفر سال این دو نفر با هم درگیر بودند این به اون فوش میداد با همون قافیه و همون وزن این یکی جوابشون داد. دربار هم به هر دوتا پول میداد دربار بنی اومیه چون اونها قصدشون این بود که اون چه که در اسلام نهی شده که همین الغاب زشت به کار بردن و جاهلیت رو زنده کردن اونا زنده کنن هر دو رو پول میدارد دازه یه نفر مسیحی هم بود بین این ها اختل اون هم گای اوقات می تو بازی بعد این شعرهای فرزده و جریر جمع شد به اسم مناغذات این دو نفر یک کتاب قطور کلاف این به او فاشت داده اونم در یک پیفر از وقت جزئه با قول خودمون اشراف زاده بود. یعنی نوادگان، یعنی او از نوادگان بزرگان جاهلیت و پدرش هم آدم با شخصیتی بود. در کنار امیرالمومنین هم بود. این یعنی مرزبانانش بود. دو در کوچکی فرازدق رو آورد به شمیر المومنی گفت شیر خوب میخونه بعد پیش بهش گفتش که مثلا بخونه یه شیر یه چیزی خون بعد همیر المومنی بش گفت علم خلق تو روایاتی که هست پیش قرآن یاد بده خودش میگه بعدا به خاطر این من رفتم و قرآن رو حفظ کرد حالا این فرازدق با این جریر با هم درگیره در یکی از ابیاتش که به جریر داره به قول خودمون حجو میکنی اینطور میگه میگه اولائک آبایی اولائک اسم اشاره دور آورده برای تعظیم چند تا از پدران خودشو تو شعر بالاتر از این بیان میکن مجاشه امرال قیس کیجی کی. میگه اونا رو اسم میبره که تو جاهلیت آدم گندهای بودند. بودن میگه اینا پدران من اولائک ای آبای اینا بزرگان منند گفتم گفتم اولائک اسم شاره دور آورده برای تعظیم. یعنی این بزرگان آبا و اجداد منند اولایی که آبایی اسم رو برای اینا هستند پدر آله بعد میگه فجعنی به جعنی یعنی جعلایی به مثله هم بابای تعدیه است یعنی آهای جریر این فافای نتیجه است پس در نتیجه تو هم مثل اینها را اگه داری بیار تو هم اگه باباهایی داری که اجدادی داری که سرشون به تنشون میارزه و مثل اینها ها هستن زکن اینجا این فعل امر که فعل عمر آورده به معنای حقیقی خودش نیست معنای که مجازی که خوندیم با هم و یکی از معانی مجازی تعجیز داری <تصفيق> یعنی اگه راست میگی تو هم مثل اینها رو بیار یعنی تو نمیتونی کسی رو نداری تو بزرگزاده نیستی اگر تو هم کسانی رو داری که سرشون به تنشون میارزه فجعنی به مثله همون. تو هم یاد پیش من مانند این پدران نمیتونیم نمیتونی فیلهم برای تعجیز اولائک که آبایی فجعنی به اذا جمعتنا یا جریر المجامهون بیار مثل این ها رو که اذن یعنی hina نه جمعتنا جمع کند ما را ای جریر المجامع مجامع یعنی محافل زمانی که محافل ما رو جمع میکنه مردم جمع میشن پیش هم هستیم ها مردمم جمع شدن مثلا تو دربار خلیفه یا در جایی که شعرها دارن شعر میخونن در محفل و ها تو هم مثل این پدران رو کن، تو هم برای خودت بگو کیست آ جریر اینجا یکی تو جمعت ناالمجامه موقعی که مجامع ما را جمع کند ای جریر خب این مجاز عقلیه چون مجامع که جمع نمیکنه کنه اینم با هم خوند بلکه اینها در مجامع جمع میشن یه یا جریر که گفته جریر مقابلش بوده چرا با یا گفته م? چرا با یا خطاب کرد و با یا ندا کرده برای خاطر که مخاصر رو تحقیر کنه یعنی آهای جریر آهای جریر وقتی که ما در محافل جمع شدیم درست شد تو هم پدران خودت رو بگو که هم پدران خودت رو صدا کن بگو که ای؟ تو این پدران رو داری. اگه راست میگی بگو که یعنی حالا چرا یا جریر گفت به دلیل اینکه او رو تخریب کرد آها جریر داد کشید سرش آ یه آیه هست فرعون به موسا فرعون به موسی میگه می انی داش کنین انی لا اظن انی یا موسا مسهورا موسا چلاش خواهی بوده چلو فیران با هم به گمگو بر برمیگرده به موسا میگه انی لعظن نکر با این نو لامم میگه تاکید میکنه یعنی به پیر به پیغمبر قسم آه. قسم میخورم اینی لعظن نکر من گمان میکنم تو مسهور هستی سهر شدی من خیال میکنم تو رو جادو کردم. آهای موسی چرا گفت یا موسا خواست تحقیل کنید پادشاه بود و فرعون بود آه؟ آهای موسا من قسم میخورم که گمان میکنم تو سهرت کرده درسته؟ یه این همین موسا جلوی قرار ایستاده بود و او برگشت چنین گفت گفت انی لاظن یا موسی مسهورا موسی هم جواب شد جواب شد گفت چی گفت انی لعظنو, محثبور سن. لعظنو که یا فرعون و محثبورا محثبور با سی سنوکت گفت اینی ازون که یا فرعون منم گمام میکنم تو رو فرعون باور دارم تو رو فرعون مصبور یعنی حلاک شده تو رو بدبخت میبینم آهای فرعون موسی هم جواب های هویه موسی که نترسید در مقابل او وقتی که او گفتش که یا موسا این گفت یا فران آ فران منم فکر میکنم که تو نابود شد ببینی؟ این. جروب روی هموز ندا اینجا با حرف ندای بعید اومده برای تحقیر طرف برای اینکه بگه تو شعنت با اینه. تو کسی نیستی که من فکر کنم تو کنار منی این اینو می‌خواست بگه قال الفرزدق و یفتخ رو به آبایی گفته فرزدق در حالی که پوز میداده به پدران خودش و جو جریر را و داشته جریر رو حجم می‌کرده. اولای که آبایی اینها پدران منی اولای که اشاره به اسمایی داره که قبل از این توی عبیات بوده و جعنی این فافای نتیجه است. پس بیار تو برای من مثل اینها رو یعنی نمیتونی فیل هم برای تحجیزه اگر راست میگی تو هم مثل اینها رو زیب کن که ازا جمعت نلمجام رو زمانی که ما رو جمع کنه محافل اون محافل سلطانی ما رو جمع کنه تو هم بکن آهای جریر, یا جریر. این وسط این آهای جریر رو داد زده الان خاطر میگی تو کسی دیستی شعن پایی دقیقاً من دوتا از ورا مثال زدم که فرعون به موسی میگه اینیل عزون که یا موسی مصبورا موسی هم در جواب میگه اینیل عزون که یا فرعونه مصبورا باست حالا نگاه کنید توی مدت و اما فل مثال سال سه فعلا انال مخاطب اعتقاد المتکلم مخاطب در اعتقاد متقلم مثل موسی که در اعتقاد فرعون آدم پایینی دیده بود سرش داد کشید و با بعید صداش کرد و اما فلم سال سال سفل المخاطبه فی اعتقاد المتکلمه وزیع شد شن خیلی پایینه سغیر و ارزشش خیلی کمه فکه انم بعد درجه تهیفل گویا دور بودن منزلت او در انهتاد در سقوط و بیشخصیتی بعد منزلت او بعدون فیلمسافه شده بعد در مسافه تمام آخری رو نگاه کنید و بالا آخر شاعر دیگری گفته به یک کسی که حالا کنارش بوده دورم نبوده گفت آیا جامعه دنیا لغیر بلاغتن بلاغتن بلاغه یعنی رسید لغیر بلاغت غیر انتهای دنیا آی کسی که دنیا هست جمع میکنی اونم لغیر بلاغت بدون اینکه انتهای داشته باشه مایی کسی جمع بکنی یه مقدار جمع کنم بس دیگه میگه نه لغیر بلاغت بدون اینکه انتهایی داشته باشه. آهای. جمع کننده ی دنیا بدون انتها. بعد این جواب ندست. لمن تجمعه دنیا. برای چه کسی داری این دنیا رو جمع میکنی؟ و انت تموت و حالان که تو میری؟ وق خب اون آقا چرا گفته بهش ایا جامعت دنیا با اون که بغرش بهش میگه دنیا ای جامعت دنیا با اینطور میگفت ولی چون او مشغول به جمع کردن دنیا بوده از نظر این قافله پراکندگی ذهن داره اصلا حواسش به این نیست غرق در جمع کردن مال دنیاست انتها هم نداره. بر برمیگرده به او میگه ایا جامعه دنیا در غیر بلاوته. آها کننده دنیا بدون انتها. لمن تجمع دنیا و انت تموت. برای کی داری جمع میکنی؟ در حالی که تو از این دنیا خواهی رفت و خواهی مفت. لمن تجمع دنیای. لمن استفخانه. متعلق به تجمع است. مقدم شده برای صداره. تجمعه دنیا این و انتتموت هم باقش حالیه این جمله حالیه لمن تجمعه و دنیا و انتتموت این جمله جواب نداست که صدا کرد شاهد ما این ایا جامعه دنیاست که او بغل دستش بوده ولی با ایا صدا کرده چرا؟ به خاطر اینکه گفته اون ذهنش پراکنده است. اصلا جسمش پیش ماست روح و روانش پیش ما ما نیست لذا باید داد بزنیم تا حرفمونو بفر اما فی المثال الاخیر اما, اما در مثال آخر فلعن المخاطب لغفلته هی مخاطب به خاطر قفلتش و زهوله قفلت و زهول یکیه. چیه به قفلته و زهوله هی باید بگیم به خاطر قفلت و حواظ پرتیش که نهو غیر حاضر این محل انگار که اصلا در کنار متکلم نیست فی مکانه وارد انگار که اینجا نیست او یا جسمش این بقل ماست روح و روانش بیشه ما نیست خودتا مثل کسی که کنار ما نشسته باشه سرش دویه گوشی خودش باشه هیچ حواسش به و خودمون اینجا نیست درسته بغل ماست اینو ذات میکشیم سرش آهای فلانی رو گوش نمی کنیم با ندای بعید صداش میکنیم به خاطر چی؟ به خاطر لقفلتی و شرود به خاطر اینکه که است و ذهنش پیش ما نیست این وقت تخرج و الفاظ و ندا میخوام بذارم بمونه که جلسه بعدی یه مقدار برسن ملدار دوباره تکرار کنم که مبحث کامل باشه اینکه آخر رو بخونم با نموزش ها که بحث رو کاملا تمام کرده باشین دیگه انشاء به طور کل تمام میشه و وارد بحث جدیدی میشیم به اسم قصر که بحث بسیار زیباییست توصیه من هم به شما اینه حالا که انشاء رو کامل خوندیم و تمام شد و الان تا شنبه انشاء الله شما وقت دارید و میتونید این کار کنید بحث انشاء رو یک دور کامل بکنید مطالبش رو نگاه کنید همین امثله و قواعد درس رو و مطالبش رو به ظاهر نگاه کنید و به ذهن بسپرید تصور شما برای این باشه که این درست رو یاد گرفتید و تو ذهنتون دارید اصل اینها فهمیدنیه و شما اینشالله مطلب رو فهمید همه شما رو به خداوند سبحان میسپرم انشا در پناه خداوند معاف و معیت باشید.